خب خب خب نگاه کنید که تو این درس مهم داریم درباره چی صحبت می‌کنیم. بالاخره می‌خوایم درباره یکی از مفاهیم بنیادی توی هیپنوتیزم با شما صحبت کنیم. خیلی جدیتر وارد شیم. توجه کنید که حتماً باید دروس قبل رو خیلی خوب مسلط باشید. یهویی نیاید وارد این درس آخر شید. ما تو این درس می‌خوایم درباره مدل هیپنوتیک لوپ یا چرخه‌ی هیپنوتیزمی صحبت کنیم. این چرخه یکی از درواقع واقع هایی هست که به خوبی توصیف میکنه که فرایند هیبنوتیزم توی زندگی روزمره توی هیبنوتیزم خیلی خرفهی و اه, کلینیکال و اینها چطور رخ میده و درواقع این یه ساختاری هست که صد البته میشه خیلی شاخ و برگ بیشتری بهش داد اما اه, به نظرم اومد که فعلا اگه با این ساختار شروع کنیم براتون فهمش راحت تر باشه و پایه های این یادگیریتون در زمینه هیبنوتیز در زمینه اصول اون محکمتر بنا خواهد شد خب پس خیلی خوب دقت کنید که این درس خیلی مهمه من باز تحکید می‌کنم اگه شما هیبنوتیکلوب ها رو خیلی خوب یاد بگیرید خیلی خوب خواهید تونست دیگران رو هیبنوتیز کنید خودتون رو کنید. یا اینکه خودتون و دیگران رو از سیب نجات بدید از سیب های منفی که در زندگی روزمره تون رخ میده یه بیمارکی هست می کنه, من دیگه می میرم من دیگه خوب نمیشم یه آدمی که حس میکنه کنه رابطه شقیش شده من دیگه نمیتونم اون اون آدمو جذب کنم من دیگه نمی تا آباد تنها خواهم موند و خواهم مرد و هنچر فای منفی که شد شما هم برخی اوقات توی زندگیتون یا هر جای دیگه شنده باشید یا خودتون گرفتار شده باشید خب خیلی خوب به این عکس نگاه کنید به عکسی که الان توی این درس میتونید مشاهده کنید یک چرخهی رو میبینیم belief imagination or mind flow physiology experience و در مرکز این چرخه هم consciousness معنی اینها چی هست بر کسایی که شاید مشکل داشته باشن توی زبان انگلیسی بالا ما باور رو داریم belief سمت راست ایمجینیشن اور مایند فلو تصورات ذهنی یا جریان‌های ذهنی به هر شکلی هر چیز تو سرتون میگی هر چیز تصور میکنید پایین فیزیولوژی رو داریم یعنی فیزیولوژی بدنی حالات بدنی زبان بدنتون یا انرژی که دارید هر چیزی شبیه این ریتم تنفستون حتی سمت شب اکسپریانس رو داریم تجربه یعنی شواهد مدرک رویدادهایی هایی که رخ میده چیزی که میبینید این میشه ساختار چرخی هیپنوتیزمی و از شما دعوت میکنم که برای ده ثانیه خیلی خوب بهش نگاه کنید من سکوت میکنم بسیار خوب توجه دارید که مرکز حلقه هم کانشسنس هست که خوشیاری شماست یعنی اون وضعیتی که هنوز شما هیپنوتیزم نشدید، هنوز شما غرق این چرخه نشدید، می‌بینید چه جوریه؟ در واقع این چرخه داره به شما یاد میده که اگه داری هیپنوتیزم می‌شی، اگه داری یه نفر دیگر رو هیپنوتیزم می‌کنی، در واقع داری اون رو غرق این چرخه می‌کنی. داری تصوراتش رو فعال می‌کنی، با کلمات، با حرفات، با زبان بدنت، با هر چیزی داری این mind flow و imagination و تصوراتشو فعال میکنی ممکنه بخوای فیزیولوژی و حالت رو تغییر بدی ممکنه یه سری ایکسپریانس و شواهد رو نشونش بدی و نهایتا یک دور که این چرخه میچرخه داری باورهاشو در برای یه موضوع خاص محکم میکنی بلیفت داری بهش میدی داری اون باورهاشو روز به روز محکم میکنی و در مرکز چرخه هم که consciousness هست که در واقع خوشیاری اون فرد خوشیاری یعنی بودن شما توی لحظه قبل اینکه محو چیزی بشید فقط بودن شما بدون فکر بدون تصورات بدون باور فقط بودن شما چیزی که توی مدیتیشن مقدور میشه در واقع بیرون اومدن از هیپنوتیز و زمانی که شما هیپنوتیزم میشید این کانشسنس دقیقا کشیده میشه به درون این چرخه و از مرکزیت خارج میشه شما دیگه نیست که اصلا اینجا هستید مثل اون فیلمی که می بینید و یه ها گریه رو میگیره تو می توی سینما داره که اون فقط یه اما همچون شما خوشیاری رو از دست میدید یعنی کانشنس از مرکز حلقه خارج میشه شما حس میکنید که مرد اینجوری کارکتر اول فیلم بازیگری خیلی دوستش داشتم مرد و دیگه بم گریه کنم و بعد که به خودتون می میبینید می بینید تو سینما هستید کانچنس برمیگرده به مرکز حلقه شما دوباره کاننسنس میشید هوشیار میشید و یه این چرخه پایان پیدا میکنه پس خیلی خوب به این چرخه نگاه کنید خیلی خوب سعی کنید اون رو بفهمید همطور که میبینید این چرخه هر دوری که میچرخه دستاردی که داره اینه که شما رو بیشتر وارد اون تونل هیبنوتیزی میکنه و باورهای شما محکم میشه من مثال میزنم کسی که معلم اول زرستانش بهش میگه تو خیلی پخمه ای تو بلد نیستی چیزی یاد بگیری تو اصلا ذهنت خوب کار نمیکنه ریاضیاتت ضعیفه بار اولی که میشنوه فقط در حد دیگه باور خیلی ضعیف و ریزه شاید حالا شاید باورم نکنه سن بر اساس سابقه ای که داره بر اساس اینکه مثلا اون بچه توی خونه خانوادهش چی گفتن و اینها بعد در ادامه به خاطر اون حرف خوصا اگه اون حرف به صورت هیبنوتیزمی گفته شده باشه سریح و اینها گفته شده باشه ممکنه ایمجینیشن یا تصورات و جریانهای ذهنی اون بچه فعال شه بگه راستی شاید راست میگم من خنگم فکر کنم و بعد ممکنه با این تصورات زندگی کنه یه بازی ای رو خیلی خوب دقت کنید و فکر کنید به چیزی که میگم و بعد در ادامه این بچه‌ای که تردید داره حالش گرفته است تو اینها حتی توجهش هم بیشتر میره به سمت اشتباهاتش یعنی از الان به بعد وقتی اشتباه میکنه میگه اه شاید من واقعا خنگم یعنی یه جریان ذهنی براش ایجاد میشه و ممکنه تا فیزیولوژیش تغییر کنه یعنی اون بچه ممکنه مثلا درست تنفس نکنه جمع بشینه همین باعث میشه کارایی ذهنش پایین بیاد و بیشتر در واقع دچار اون توخم خنگ بودن خودش رو اینها بشه و بعد ممکنه سری اکسپریانس هایی داشته باشه مثلا بیاد یه مسئله ریاضی رو که واقعا هم سخت بر همه هم سخته حل کنه و بعد ببینه واقعا راست میگفت من نمیتونم حل کنم و بعد هی این چرخه که تکرار میشه باور اون فرد به باور اون بچه به پخمه بودنش یا خنگ بودنش قوی تر میشه و به این ترتیب اون معلمی که اولین بار این جمله رو میگه که خیانت بزرگی در حق اون بچه میکنه این بچه ممکنه تا سالهای سال زمان کنکورش و حتی پس از اون حسه پخمه بودن رو داشته باشه خلصا اینکه خیلی اوقات شواهد نمیزونم حرف که خونواده میزنن جو به خونواده ها اینها بیممکنه کمک کنه مثال دیگه میسونه کسی باشه که بیماره دکتر میاد خیلی با اعتماد به نهست با روپوش پزشکی تو ششاش نگاه میکنه میگه تو به زودی خواهی مرد متاسفم هیچ کاری از دست ما بر نمیاد و چون اصلا همین صلاحیت و روپوش پزشکی و تون صدا و با کلاس بودن و رو و همه اثر میذاره یه باوری شکل میگیره و بعد دوباره این فر شروع میکنه ایمیجینیشن ها در واقع با تصوراتش خودش خودشو مریض میکنه خودش خودشو میکشه حتی اگه اون بیماری ذاتن و لزوما کشنده هم نبوده باشه این اتفاق میفته و بعد فیزیولوژیش حالتای بدنیش نمیدونم تجربیاتی که باش مواجم همه این ها یه جورایی باعث میشه که اون فرد هوشیاریش رو از دست بده و غرق این چرخه هیپنوتیزمی بشه. همطور که میبینید نجات از چرخ‌های هیپنوتیزمی و یا کند کردن اون چون شما نمیتونید یه چرخه رو یهو متوقف کنید، باید کم کم برعکسش کنید. نجات با کانشسنس یعنی شما باید هوشیاریتون رو از غرق بودن در چرخ هیپنوتیزمی نجات بدید و بیارید به مرکز حلقه. یعنی شما وجودتون رو، رفتارتون رو، سرعت فکر کردنتون رو حتی سرعت حرف زدنتون رو کم کنید بیشتر ناظر باشید، ای قرق نشید، ای این اینو گفت و اصلا احساسات و فیزیولوژی و همین ها رو نگه دارید رو با تمرین مثل مدیتشن بیشتر کنید و قرق این نشید، باورهاتون رو عوض کنید و تون بخش مایند فلو و ایمیجینیشن خیلی اوقات ممکنه توجه شما باشه در واقع وقتی شما توجهتون میره به اینکه چه میدونم من اعتماد به نفس ندارم من جذاب نیستم یا چیز شبیه این شما در واقع دارید این چرخ رو بهش کمک میکنید در حالی که اگه تمرکزتون بره به سمتی که برخلاف این چرخ هست در واقع در جهت مثبت این چرخ رو به کار بگیرید شما در واقع جهت هیپنوتیزم رو عوض میکنید و این قدرتیه که آگاهی از چرخهای هیپنوتیزم میتونه داشته باشه نکات خیلی متعددی رو میشه گفت درباره این چرخهای هیپنوتیزمی اما به صورت خلاصه میخوام بگم که کل کاری که ما یه جورایی تو علم هیپنوتیزم داریم انجام میدیم اینه که ممکنه با ادبیاتمون با تن صدامون با کارایی که میکنیم با محیطی که فراهم میکنیم و یا با کلی از این تکنیکهای دیگه که حالا در صحبت کردیم و دوباره خواهیم کرد به نوعی داریم یه جایی از این چرخه رو تسهیل می کنیم. ممکنه مثلا ما جوری حرف بزنیم که یه باور منفی رو سست کنه و یه باور مثبتی رو به جاش بشونه ممکنه جوری حرف زنیم که تصورات فرد فعال بشه یه رسطورانی که میاد مثلا یه عکس خیلی قوبو وسوسه انگیز از یه پیتزا رو به نمایش اون داره ایمیجینیشن و تصورات و های ذهنی شما رو فعال می‌کنه یا حتی وقتی بوی غذا میاد درو شما دارید وارد این چرخه میشید یا ممکنه فیزیولوژی شما دستکاری بشه یعنی هیپنوتیسم شدن در این صحبت خواهیم کرد ممکنه اکسپریانس و شواهد و تجربه‌هایی توی زندگیتون بوده باشه که عامل هیپنوتیسمه و دقت کنید که این ای که میبینید حتی روی داتای متافیزیکی رم توصیف میکنه یعنی مثلا نمیدونم چقدر از متافیزیک آگاهی دارید چقدر همراه مطالب دیگه یا دوره متافیزیک بودید شما میتونید به فض با قدرت ذهنتون یه فرد خاص رو جذب کنید نمیدونم یه مقدار پول جذب کنید خواستایی که دارید رو جذب کنید فقط با قدرت ذهنتون بدون انجام هیچ کاری فقط با هیپنوتیزم کردن خودتون فقط با خود هیپنوتیزم کردن خودتون فقط با یه جا نشستن و تصفیر سازی کردن خب و روشش همین هیپناتیک که یک میبینید در واقع شما یه چرخه‌ای رو ایجاد میکنید که این چرخه در واقع شما رو وارد یه تونل واقعیت می‌کنه که به فرض تو این تونل واقعیت ممکنه شما قدرت تکون دادن اشسامو داشته باشید ممکنه شما قدرت جذب یه رو داشته باشید در واقع همه ی قوانینی که در حال حاضر برای انسان وجود داره به خاطر اینه که توی یه هیپناتیک لوبی گیر کردن همین الان که این هیپناتیک لوب در واقع اونا رو به دردسر انداختی یه سری چیزا رو برشون ممکن کرده یه سری چیزا برشون غیر ممکنه علت اینه که اونا فقط توی تونل واقعیتن یعنی که اون تونل این ویژگی‌ها رو داره و بنابراین این تونل واقعیت روی داتای متافیزیکی رو هم توصیف میکنه اگه شما میخواید قابلیت خاصی رو توی ذهنتون پرورش بدید مثل خوندن فکر دیگران یا هر چیز شبیه این باید در واقع وارد تونل واقعیتش بشید ممکنه الان باور شما این باشه که بابا اصلا نمیشه فکر دیگران خوند یا چیزی شبیه این شما باید کم کم شروع کنید با ایمجینیشن با تصورات این ایمیجینیشن و تصورات خیلی جالب شما میتونید همین یعنی الان چیزی رو تصور کنید که نیستید خب میتونید تصور کنید و بعد بشید اون یعنی چشه‌تون رو ببندید و واقعا توی اون بدنی باشید که به فرض میتونید فکر دیگران رو بخونید مثلا و وقتی این کارو دائم تکرار میکنید کل ساختار وجودیتون رو ذمیر ناخودآگاهتون جوری تغییر میده که اصلا وارد یه انرژی دیگه بشید یه سری قابلیت بهتون اضافه بشه حتی یه سری بخشای مختلف از ذهنتون فعال بشه و خیلی چیزهای دیگه و هر چقدر که اکسپریانس ها رخ میده و در واقع شما وارد این چرخه میشید بیشتر و بیشتر نهایتاً اون تونل واقعیت جدید براتون شکل میگیره و باورها هستن که بنیاد تونل های واقعیتن وقتی یه باوری برای شما شکل میگیره شما میتونید بعد از اون در واقع از ویژگی های اون تونل واقعیت که روی اون باورها استوار شده استفاده کنید. خوب این میشه یه مقدمه ای در رابطه هیپناتیک ها امیدوارم که خیلی خوب بهش توجه کرده باشید و حتی لازمه بارها و بارها بهش گوش کنید چون زیاد با این هیپناتیک ها کار خواهیم داشت.